ببینید نبرد ترو مثلاً تروها یا نبرد مثلا واترلو دیگه تکرار نمیشه اون یک نبرد بوده. ببین این مفاهیمی که تکرار میشن این مفاهیم کلی هن مفاهیم جز و خاص تکرار نمیشن تاریخ یک امر غیر محتمل و تکرار ناپذیره. حالا این خیلی بحث شیرینیه اتفاقا واردش بشیم من کاملا قبول دارم اون مباعث که میگن تکرار میشه اونا همین مباحث کلیه مثلا ببینید حاکمیت ها تکرار میشن خب اما حکومت ها دیگه تکرار نمیشن. اشکانیان دیگه تکرار نمیشن اما حاکمیت های مشابه بلکه تکرار میشه یک... حالا این وقتی وارد بحث شدیم اتفاقا من خیلی علاقه دارم این بحث که دوسته نشه از آیمای وقت بدن من در روی صحبت کنیم بسیار بحث شدیم از زمانی که مونده برام من دو تا مبحث دارم یکی من علاقه دارم یک فرصتی بشه یه بار دیگه ما اسناد شاهنامه رو بررسی کنیم مگه های موبی سلام میدونن اینو بگیم اگر نه من درباره کیومرث در اسطورهای یک بحث کوتاهی دارم اونو رو اگه فکر مرتبطه بله بفرمایید بله این چون بحثمون کیومرث هستش بله. این بحث فلسفه تاریخمون در واقع یک بحث ای بوده حالا اگه بله بله، ادامه بله. باش. حالا بعد من اون اسناد شاهنامه که تو برابری خونیم یه بار توی نشاط فرصت شد اونم بعداً می‌خونم بله. ببینید در استورهای های در اسطوره ببینید این استوره رو توجه کنید گایا در استورهای ایجی تجسم شخصیت زمین و یکی از اصلی ترین و کوهند ترین خدایان اژه است اون نه تنها الهه مادر کوهن بود بلکه اولین الهه زمین و طبق بسیاری از روایات او اولین موجودی بود که از دل خائوس یا خلق به وجود آمد به طوری که میگویند او زاده خائوس است گایا در واقع خود زمین است و همیشه هر جا سخن از طبیعت میان می آید به نحوی گایا در نظر گرفته می شود حالا اون مادلش توی روم تراه است ببینید حالا دنباره استوره رو توجه کنید گایا به خودی خود پونتوس یا دریا و اورانوس یا همون آسمان ها را به دنیا آورد یا به وجود آورد و سپس همین اورانوس او را به عنوان همسر برگزید. فرزندان آن دو شامل تیتان ها بودن گایا اولین نسل از سیکلوب ها یا های یک چشم اله های انتقام گیگانت ها که بعد از ریختن خون اورانوس بر روی زمین به وجود آمدن و فرزندی صد دست را نیز به وجود آورد پس از جدا شدن زمین از آسمان گایا فرزندان بیشتری به وجود آورد که به پدر آنها پونتوس بود نام آنها که همه گی ایزدان دریا به حساب می عبارت بودند از نرعوس که نرعید ها از اینان یا همون به اسطلاح پریه دریایی تا اوماس فورسی ستو و ایریبیاد در نسخه های دیگر گایا فرزندان دیگری از برادرش تارتاروس داشت که شامل تایفان و, تایفان و اکیدنه بود که بعدها به دشمنی با زهوس برخواستن حالا کاری نداریم. بعد اون اورانوس رو میخوره و این داستان ادامه داره. ببینید نام کیومرس یا گعو مرته این یک نام کوهن ایرانیه که در عوستان آمده گاو که اروپای اونو گاو معنی کردن اومدن داستان رو از تعریف کردن از صورتی که مثلا گاو شروان در اوستا یعنی روان آفرینش گاو به معنای اسطلاح خود ذات آفرینشه ما اینو مثلا خود نام مرز که بررسی کنیم گاو اون مرته که الان دیگه فراوان ازش ریشه داریم مثلا در خود انگلیسی تمام واجه های در لاتین و انگلیسی تمام واژهای مرتبط با مردن و دفن و گور و اینا همش از ریشه همین مرد یا مرده گرفته شده که مارادو انگلیسی ام آی آر آی ای یو دی این به ریشهش الان اونجاست این یعنی میرا مرتا یعنی میرا گاو یعنی همون چیزی که آفریده شده آفریده ی میرا چون پیش از اینا امشاسپندان بودن آفریده شده بودن اما دیگه جاودانه بودن مرگ نداشتن گاو مرتا نخستین آفریدی بود که خاصیت مردن هم داشت و می مرد. یک جایی به پایان می رسید و ما میدونیم که این ویژگیه حالا به خود طور مثلا ما انسان هاست دیگه ما آفریده های به صاحب اهورایی هستیم که حالا مثل امشاست پندان فرشتگان دیگه زنده نمیمونیم مونیم می میریم این گعو ما ریشش رو در همون اجه می بینیم به صورت گایا می بینیم که مایی زایشه ساب... آفر... آره دیگه آفریده این همه چیز رو می آفرین و اینها خب من ببینید الان اتفاقا آی فیروزی اشاره میکنن که اونا مثلا ارفر رو ورداشتن چنگ میزد و زمینش کردن درسته اما ببینید اونها هم اسطوره دارن یعنی چون وصله به ما هستن اونها هم اصطوره دارن ببینید شما هزار هم که بگردین مثلا برای رئا، برای پوزیدون برای مثلا آجیپتئوس برای مثلا زئوس برای اینا نمیتونین معادل زمینی پیدا کنیم ما مثلا توی اوستا درسته ما تو رامیشت توی آوانیش توی زامیادیش توی ارتایش هوشنگ میره نمیدونم هزار تا گاو ده هزار تا گوسفند قربانی میکنه مثلا از آنایتا ادویسور آنایتا میخواد که برای من اینجوری کن اونجوری کن بله کاملا میبینین گاو و گوسفند داره میبره میکشه یه چیزی از یکی می‌خواد اصلا بحثی نیست ببینین الان ببینین اورانوس و گایا چکار میکنن اورانوس حالا گفته نام یکی از اسطوره پدر بزرگ زوس و پدر کرونوس وی با گایا همبستر شد و فرزندان متعددی به دنیا آورد گایا از این موضوع خسته شده بود از کرونوس از یکی از فرزندانش کمک خواست که آلت تناسلی اورانوس رو با داس ببره و به دریا بندازه بنابر این افسانه آفرودیدی الهه عشق از اتری که اون خونی که از اون قصد شدن حالا تناسلی اورانوس به دریا افکنده شده بود از دریا بولش زاده شد خب ببینید دارن عمل انجام میدن دیگه مثلا اون که رفته گاو کشته، و کشته بله اورانوس اینا... و گایام دارن خیلی کار میکن اینا در جایگاه خدایان و ایزدان این کار رو میکنه. دقیقاً دقیقاً دقیقاً ولی اونها در اونها در جایگاه انسان دارن این کارو میکنن شما ببینید کارهایی که گرشاست میکنه مثلا کاری که گرشاست میکنه اون کاری که با مرغ کمک میکنه اونا کاری که می‌دن با اجده های چی می‌کنه اینا شما ببینید دقیقاً مثل کارای ایناست یعنی ما یک بخشی از اسطوره‌امون ببینید اون‌ها هم این روند رو دارن حالا من عرض می‌کنم ببینید بالای این تبارنامه آخایوس گایا و اورانوس دو دقیقه بله تکرار می میاد یه شاخش میاد رئاب پوزیدون مثلا کلیکیس هارمونیا و اینا این شاخش میاد میشه مثلا تلفاسا آخیرو آجیپتوس کم کم می‌بینیم داره ملموس میشه میایم به داناوس، آکریسیوس، داناؤه دخترش با زئوس ازدواج میکنه میرسه به پرسوس، بعد حالا ما میبینیم پرسعوس یک کارایی میکنه میره دیسک پرتاب میکنه، بعد خشایشان میگه آقا این چیز این نیای ماست یعنی بعد کم کم, کم کم داره میبینیم که ملموس میشه یعنی ما از کیومرس که میایم جلو، حالا ببینید ما آناهیتا داریم اینا نداریم نمیدونم اون همه ای زدان و اینا داریم که کارهای آسمان امشاس پندارن ای زدان کارای دیگه میکنن ما تو دورهمون چیزایی داریم مثل پوزیدون و همین کرونوس و اینا کم کم ملموس میشه همینطور که کم کم بعد میبینیم ای پرسوس داره ملموس میشه برامون میره زمینی تر میشه می مادرش میذاراش توی چیزی میندازاش تو آب میره به جزیره جزیره نزدیک کرت از اونجا میره به مکنایو کارای داره میکنه بعد بعد این دیگه میبینیم بینیم هست میگه این نیای ماست کم کم میبینیم اون اب داستان واقعی اجه آغاز میشه ما هم همین طوریم ما میبییم که خب خدایان داریم و زوروان با تو آسمان چیکار میکنن اهریمن میاد اهورا میاد بعد کیورس به وجود میاد پسرش با پسر اهریمن میجنگه حالا اینا یک مقدار افسانه ای بعد مییم جلو و کم کم میبینیم کردارا داره واییتر میشه فریدون بعد منوچر می سرزمین داره تشکیل میشه دیگه م از گشتاس و بهمن و اینا و همای داراب که دیگه اصلا کارای زمینی به, به مخ میرن و, و به روم میرن و یک کارای واقعا دیگه ملموس انجام میدن ببینید این میخواستم اشاره کنم که این روند رو تو اجه هم ما میبینیم یعنی اونا هر چیزیشون همجور سر جای خودش بررسی میشه بله خیلی متشکریم حتما شنوندگان گرامی این برنامه رو پیگیری بکنن ما قسمت 38 این مباحث رو ادامه خواهیم داد. البته خب حالا میخوایم با هم به توافق بریسیم که آیا قسمت 38 و 39 رو به فلسفه تاریخ میپردازن یا ادامه این بحث رو حالا امیدوارم که در قسمت 38 ما رو هم دنبال کنید. شنوندنگانی گرامی رو به خداوند متعال خدا خدایی آرانگه نگهدار.